چگونه میتوان منطق بازیهای اجتماعی را ارتقا بخشید زمینهای تاریخ و جامعه، وضعیت نهادی، ساختارها و فرهنگ بازیهای انسانی را از این رو به آن رو میکنند اگر در بازی رانندگان که پیشتر ذکر شد نوعی تجربه تاریخی و یادگیری اجتماعی رانندگان را به این فکر سوق دهد که در این سرزمین باید گلیم خیش را از آب بیرون کشید و به آنها ناخداغاه القا کند اگر دیر به جنبی باختی بازی گذشت به حماقت تعبیر می شود و بازی زرنگی با هوشی و اقلانیت به نظر میرسد. پس بدون اصلاحات نهادی، ساختاری و تغییرات فرهنگی امیق قواعد بازی بهبود و ارتقا نمی یابد. آموزش و نیز مداخلات سیستمی مثل وضع قوانین و تحتیبات، میتواند سبب شود بازی پل از حالت بازی مجموع صفر درآید. آید مثلا اگر پل دو طرفه شود یا در دوسوی آن چراغ هوشمند کار گذاشته شود و یا حداقل حق تقدم بر حسب قبل و بعد از ظهر مشخص شود یا پلیس آموزش ای در صحنه حضور داشته باشد و رانندگان نیز در کنار این ترتیبات از انواع آموزش اجتماعی بهرهمند باشند بازی پل ارتقا پیدا میکند بدون رویکرد سیستمی، هیچ وقت قواعد بازی بهبود و ارتقا پیدا نمی کند. برای مثال، به تازگی در بانک ها دستگاهی طبیع شده که هر کس وارد می شود، به طور اتوماتیک یک شماره می گیرد. شماره ها به ترتیب در تابلوی الکترونیکی نشان داده می شود و اعلام می شود دارنده هر شماره به کدام باجه مراجعه کند. در این حال، مراجعان راحت می و برایشان قابل پیش است که مثلا تا چند دقیقه دیگر به باجه مشخصی مراجعه خواهند کرد و کارشان انجام می شود. این نمونه ای از مداخله مطالعه شده در عملکرد کرده سیستم های باز اجتماعی و رفتار عاملان انسانی در آنهاست و شرایط، قواعد و منطق بازی مراجعه کنندگان به بانک و خلقیات آنها را عوض می کند. اگر به شکل سنتی میستادند، ممکن بود هر کسی با دیگری مشاجره کند که نوبت من است و من زودتر آمدم و بحث های دیگر. بنابراین، مداخلات سیستمی، آموزش‌ها، شرایط و زمینه ها میتوانند در بازی نقش داشته باشند. موانع سر راه بازی برنده، برنده اکنون میتوان تصور کرد چرا در جامعه ایران بازی های مردم گاه، یا طبق فرضیات منفی ولی نه چندان آزموده شده برخی اغلب به نوع برنده بازنده با مجموع سفر و ناکارامد سوخ پیدا کرده است. قابل درک است اگر زمینه های تاریخ و جامعه وضعیت نهادی ساختارها و فرهنگ یک جامعه دچار عوارضی شود میتواند یادگیری اجتماعی و قواعد آموخته رفتار در آن جامعه را تا بازی های از نوع برنده بازنده و با مجموع صفر ناکارامد سوق دهد در برخی جوامع مثل اسکاتلند دوره اسمیت قواعد رقابتی کارآمد توسعه می در برخی جوامع مانند چین در سالهای اخیر قواعد تعاونی کارامد امکان گسترش پیدا کرد اما در ایران برخی موانع مانند سر راه حوادث بودن و سایر موقعیت های نامساعد و عوارض مخرب سبب شد هر دو نوع قاعده برای بحث یافتن اغلب با موانعی روبرو باشد نه عادتوارهای لازم برای بازیهای رقابت فردگرایانه و کارامت توسعه میافت. نه سازوکارهای کافی پایداری وجود داشت که های موجود در این جامعه برای بازیهای تعاونی رشد کند. نه روحیات سرمایهداری به معنای وبری بست بسمیافت. این مورد از جمله عواملی است که گاه به آن ضعف بورژوازی ملی ایران میگویند و نه روحیات اقتصاد تعاونی به صورت پایدار گسترش میافت. شاهد مثال آن تعاونی گرایی اوایل انقلاب و سپس تجربه نوعا منفی تعاونی ها بود. در تحقیقات پیشین، از بازی هرج و مرج استبداد در روابط ملت و دولت بحث شده که نمونه ای از بازی حاصل جمع صفر است. بر حسب تئوری های سیکل معیوب واگرایی اقتدارخواهی، مدلی از بازی است که در یک طرف آن جامعه قرار دارد که طالب آزادی است و طرف دیگر دولت. دولت در یک حالت از قواعد آزادی منظم تمکین می‌کند. مثلا فرمان مشروطیت نوعی تمکین به یک درجه از قواعد آزادی منظم است. یا مثلا اصلاحاتی در خود دولت و از سوی دولتمردان به وجود می آید و اصلاح طلبانی فعال می شوند مثل میرزا حسین مشیر و دوله دولتمردی که سعی می کرد به درجاتی از خاست آزادی از سوی گروه های اجتماعی تمکین کند یک حالت بازی هم این است که دولت رفتار استبدادی در پیش می گیرد به استبداد می گراید و نظم را با آزادی در تقابل قرار می دهد همانطور که گفتیم، بازی یک موقعیت استراتژیک است و راهبردهای هر طرف متقابلا به راهبردهای طرف دیگر وابسته است. وقتی جامعه طالب آزادی منظم است و دولت از قواعد نظم آزاد منشانه تمکین می‌کند، امتیازها ده و ده است که در مجموع می شود 20 و بازی پرمنفعتی شکل می‌گیرد. اما وقتی جامعه طالب حقوق و آزادی هاست اما دولت به اقتدار میگراید امتیازها ده و منفی ده است و نتیجه بازی هزینه بسیار بالایی دارد یک حالت بازی هم این است که پس از تمکین هر چند نسبی دولت به خاست آزادی منظم جامعه به مسابه طرف دیگر بازی به واگرایی و آزادی نامنظم میل میگردد و گروه ها نمیتوانند با هم توافق و اعتلاف کنند نمی توانند با هم گفتگو و سازش کنند نمی توانند حد وسط و میانگی را بگیرند و بازی هماهنگی انجام دهند جامعه نمی تواند خود را کنترل و تنظیم کند و گفتگو کند نیروهای مختلف نمی توانند در میدان جامعه به خوبی گفتگو و توافق کنند با هم درگیر می شوند و مشاجره می کنند و واگرایی پیش می آید دولت هم وسوسه میشود. برای حفظ قدرت و ثروت بازی اقتدارگرایی را دنبال کند همین بازی را در روابط کار در نظر بگیرید دو طرف بازی عبارتند از عامل سفارش دهنده و عامل کار حالت مطلوب بازی این است که عامل سفارش دهنده به حقوق عامل کار و عامل کار نیز به حقوق عامل سفارش دهنده توجه کند اما حالت دیگر این است که عامل سفارش دهنده به عامل کار اعتماد ندارد و عامل کار نیز نسبت به عامل سفارش دهنده بدبین است. در نظر بگیرید لوله ی آب خانهتان ترکیده و می‌خواهید به کارگری سفارش دهید زمین را بکند. لوله را در بیاورد و دوباره لوله کشی کند. در واقع شما با کارگر وارد یک بازی میشوید. تصویری که او از شما به عنوان کارفرما دارد و تصویری که شما از او به عنوان کارگر دارید. منطقی تاریخی، زمینهای، اجتماعی و فرهنگی دارد. خاطرات و شنیده های کارفرمایان درباره کارگران و خاطرات و شنیده های کارگران در مورد کارفرمایان سبب می شود. منطق و برداشتی شکل بگیرد که بر اساس آن دو طرف با هم بازی بیاعتمادی پیشه می کنند و حالتهای مختلفی از بازی به وجود می آگد. تحت شرایط خاصی که اوایل انقلاب اسلامی 57 به وجود آمده بود، بازی تعاونی میان مردم و گروه‌ها در گرفت. این امر نشان می‌دهد انسان‌ها فقط به منافع فردی خود فکر نمی‌کنند. اینطور نیست که آنها فقط بر اساس منافع فردی خود بازی کنند. بر اساس تئوری آدم اسمید هر کس منافع فردی خود را دنبال می‌کند و به همین دلیل می‌خواهد کالایی با کیفیت تولید کند که در نتیجه آن منافع عمومی هم حاصل می‌شود. اما به تازگی تحقیقات میدانی این نتایج را به دست داده که افراد فقط بر اساس منافع فردی بازی نمی کنند بلکه استدلال گروهی نیز نوعی قاعده بازی است افراد با استدلال گروهی می گویند ما اینطور بازی می کنیم زیرا ارزش های گروه چنین ایجاب می کند البته این هم لزوما اخلاقی نیست ممکن است ارزش های گروه من اخلاقی نباشد ولی با استدلال های گروهی خوب بازی های تعاونی پرسمر می شکل بگیرد. این بازی به صورت پایدار در ایران با موانعی روبرو شده است. در دوره قابل توجهی از تاریخ ایران بازی به چشم می‌خورد که غالب طرف‌های آن به جای تعاون و استدلال گروهی خودمداری در پیش می گیرند و در نتیجه همه دوچاره دردسر می‌شوند. بازی های فعالیت مشترک در این سرزمین در دوره‌های زیادی با مشکل روبرو شده زیرا شرایط برای رواج بازی منصفانه مساعد نبوده است فرض کنید غذایی به ارزش 100 کالری برای دو نفر وجود دارد و هر یک از دو طرف به 50 کالری نیاز دارد اینکه که این دو با هم غذا بخورند یا هر کدام جداگانه حالتهای مختلفی از بازی است یک حالت بازی این است که من در غذا خوردن مشترک انصاف بخرج دهم و او نیز انصاف بخرج دهد. حالت دیگر این است که من خودخواهی بخرج دهم و او انصاف بخرج دهد و غیره. بازی منصفانه وقتی صورت میگیرد که هم من انصاف بخرج دهم و 50 کالری بخورم و هم او انصاف بخرج دهد و 50 کالری بخورد. اما اگر من انصاف بخرجده دهم و رعایت کنم و او به سرعت مواد خوب غذا را بخورد، خودخواهی بخرجده است. یک حالت هم این است که هر دو می زرنگی کنیم که زرنگی ناکارامد است. اینجاست که با تکرار این بازی هر دو به این نتیجه می رسیم که غذا را به صورت مشترک نخوریم. علت بیشتر بدخلقی ها، فقدان نقطه تعادل بهینه در بازی هاست. تعادل از مفاهیم کلیدی بازی هاست که جان نش و دیگران در دهه نود آن را مفهوم پردازی کردند. نش و دو نفر دیگر با توضیح این مفهوم کلیدی برندگی جایزه نوبل اقتصاد شدند. از همین رو مفهوم تعادل به تعادل نش شهرت یافت. در سالهای بعد نیز جایزه نوبل اقتصاد بیشتر به حوزه نظریه بازی تعلق گرفت. برای مثال در سال 2005 به طور مشترک به توماس شلینگ و رابرت آومن رسید. تعادل نش در ریاضیات به منزله نقطه ثابتی از تابع مجموعه بهترین پاسخ‌های همه طرف‌های بازی تعریف می‌شود. این نقطه ممکن است متعدد باشد و با تعادل های چندگانه در بازی‌های پیچیده انسانی مواجه شویم. تعادل البته می‌تواند از نوع تعاونی یا رقابتی باشد. و در نهایت به صورت سازنده و یا مخرب برقرار شود و این امر چنانچه پیشتر گفته شد به زمینه و نهادها نوع یادگیری اجتماعی و مداخلات سیستمی و آموزشی مربوط می شود. برای نمونه در تئوری دست نامرعی آدم اسمیت نوعی تعادل رقابتی کارامت توضیح داده می شود که برآمده از زمینه های نهادی و فرهنگ اسکاتلند آن دوره است و در آن طرف های بازی به انتخاب اقلانی دست می زنند و منطق و برای بازی اقتصاد در پیش می گیرند که منافع فردی آنها با میانجیگری منافع جمعی تغییب و تأمین می شود و کالاهای فراوانی با پایین قیمت ممکن و رقابت کیفی به نفع مردم و مصرف کنندگان تولید می شود اما آلودگی محیط زیست ناشی از نظام بدون مرز سرمایهداری یا مسابقه تسلیحاتی ناشی از ساخت روابط بینالملل الملل نمونه‌هایی از تعادل رقابتی ناکارآمد هستند. مداخلات محیط زیستی و نیز خلع سلاح یا کنترل تسلیحات و انرژی اتمی از سوی سازمان های بین الملل و ترتیبات حقوقی مربوط به آن در صددند این تعادل‌های ناکارآمد را به های کارآمد تبدیل کنند. تعادل لزوما از نوع رقابتی و فردگرایی کلاسیک آدم اسمیتی و یگان تئوری تعادل نش نیست. در یک زمینه فرهنگی و ساختاری و با نوعی یادگیری اجتماعی ممکن است طرفهای بازی بیش از آنکه که صرفاً منافع شخصی خود را دنبال کنند، ترجیح دهند ارزشها، هنجارها و مطلوبیت های مشترک جمعی و گروهی را مبنای رفتار خود قرار دهند. تهوری های اخیر استدلال گروهی مبتنی بر این هستند که در مواردی مردم نه تنها بر اساس منافع شخصی خود بلکه در جهت هنجارها و استدلالهای جماعتی و ترجیحات گروهی مانند خانواده، مذهب، گروه نژادی و قومی و ملی بازی می کنند. شلینگ نقطه کانونی را نظریه پردازی کرده است. این مفهوم که گاه از آن به نقطه شلینگ تعبیر می شود برای توضیح بازی هماهنگی است. نقطه کانونی هر ویژگی در بازی باعث می شود، توجه مشترک بازیگران به آن جلب شود. در بازی های ایرانی یک مشکل این بود که بهین شدن نقطه تعادل در منافع طرف های بازی به دشواری صورت می گرفت. ملموزترین شکل این آرزه را هر روز در ترافیک می بینیم. آنگاه که رانندگان با توجه نکردن به نقطه کانونی و عدم رعایت حقوق یکدیگر به نوعی دچار تنش می شوند. نقطه تعادل کارآمد در بازی ترافیک آنجاست که هر طرف بازی پاسخی بهینه به استراتژی بازیگران دیگر دهد و در نتیجه همه از انحراف از این نقطه بپرهیزند. اما ترافیک ما پر از نقاتی است که در بازیها به آن نقطه خارج از تعادل گفته می شود. هر یک از رانندگان می کوشد با زرنگی از این نقاط بگذرد، اما در مقیاس کلان زندگی شهری همه قربانی همین نوزرنگی های خود می شویم. هرچند هنوز در اقتصاد و تعامل های اجتماعی زرنگ های قانونگوریز تصور می کنند موفق ترند. در جستجوی قاعدهی برای بازی های وفاق اختلافی چرا نمی توانیم با مخالفان توافق کنیم؟ کم نیستند زنان و مردانی که در زندگی مشترک ناموفقند و شرایط رضایت بخشی ندارند زیرا نمیتوانند اختلاف سلیقه و سبک زندگی یکدیگر را درک کنند. اگر این مهارت را داشته باشند که بتوانند با وجود اختلافات زیاد با هم توافق همکاری و همزیستی کنند مطمئنا کیفیت زندگی بهتری خواهند داشت همین مشکل از نهاد خانواده به دوستان و همالان سرایت می‌کند چه بسیارن دوستان صمیمی که به دلیل اختلافات جزئی مدتها با هم قهر می‌کنند دینداری ما هم دوچار چنین معذلی است به عللی مذهبی هستیم و نمی‌توانیم بفهمیم برخی دیگر درست مانند ما به الی متفاوت غیر مذهبی هستند در نتیجه نمی‌توانیم با آنها توافق و همزیستی آزادمنشانه و انسانی داشته باشیم شاید اگر شرایط کشور طور دیگری بود، شاهد بودیم غیر مذهبی ها هم نمی توانند موجودیت مذهبی ها را بپذیرند و با آنها بر اساس احترام متقابل رفتار کنند. دینداران نیز، نه تنها با دینداران دیگر، بلکه با هم کیشان خود که طرز تلقی و رفتار دینی متفاوتی دارند، کنار نمی آیند. این مسئله در مورد گروه های سیاسی در ارتباط با یکدیگر و دولت و دولت با آنها نیز ص توافق‌های پایدار سیاسی در کشور ما بحث‌انگیز است. از این قبیل مشکلات در روحیات ما زیاد است. کسانی به استناد هویت جمعی و ملی انتظار دارند فکرها، عقیده ها، و سبک‌های زندگی یکسان شود و این را وحدت کلمه می‌نامند. کسان دیگر فکر می‌کنند هویت و فردیت چیزی در خلاء است و لازمه آن این است که تاریخ و فرهنگ انکار شود. رحیافت های اخیر نظریه بازی ها بیشتر در جهت توصیع منطقی بازی هاست که در آن فرد با جماعت، رقابت با همکاری و اختلاف با وفاق تلفیق شود. توماس شیلینگ بازی را نظریه پردازی می کند که در آن طرف های بازی در عین داشتن اختلاف های جدی سعی می کنند به نقطه کانونی یا به آن نقطه از بازی که برای همه طرف های بازی اهمیت دارد هم توجه کنند و هم توجه بدهند. برای رسیدن به نقطه مطلوب باید انگیزه های طرف مقابل را بشناسند و او را برای رسیدن به این نقطه یاری کنند. شلینگ ساده ترین نمونه آن را درباره زن و شوهری توضیح می دهد که در فروشگاهی بزرگ یکدیگر را گم کردند و باید هر یک با ژرف نگری در خاطرات و تجارب مشترک پیشین و شخصیت یکدیگر بیاندی طرف دیگر چه رفتاری پیش میگیرد و چرا؟ در این صورت نقطه کانونی مثلا احتمال ایستادن در محل در خروجی خود را آشکار میکند در این نوع منطق بازی طرفهای بازی میکوشند انگیزه ها و مقاصد یکدیگر را بفهمند یکدیگر را در درک متقابل و نزدیک شدن به تعادل بهینه یاری رسانند بازی همگرایی و هماهنگی پیشگیرند سر منافع مشترک به چانهزنی بپردازند و از فنای دو جانبه بپرهیزند در بازی های زنی هر طرف سعی می کند راضی رازی نگه داشتن طرف مقابل سهم خود را به طرزی معقول بیشینه کند. شیلینگ این را مارپیچ تصاعدی انتظارات متقابل تعبیر می کند. تحلیلگران بازی های بینالمللی می گویند به جای اینکه برای داشتن امنیت ملی انرژی خود را فقط بر قدرت نظامی متمرکز کنید، بکوشید منافع کشورهای حریف از طریق جنگ نکردن با شما بالا برود. مورد مثال آن در فرهنگ و خلقیات سیاسی ماست. دولت‌ها همه توان خود را به کنترل فیزیکی مخالفان معطوف می کنند به جایی آنکه شرایطی برای جذب ها به گفتگوی مسالمت فراهم آورند. مخالفان نیز تمام نیروی خود را به هزو حریف مقتدر متمرکز می کنند به جایی آنکه با نوع گفتمان و روش خود زمینه تغییرات و اصلاحات آرام را تقویت کنند. براندن و نیل باف بر اساس مفهوم مرکزی شبکه ارزش به نظریه پردازی مدل همکاری در عین رقابت پرداختند، دستیابی به اخلاق اقتصادی و توجه به ارزشها در فعالیت بنگاه های اقتصادی زمانی میسر می شود که در تعامل های اقتصادی به ویژه در شرایط رقابتی نقطه و یا نقاط تعادل امکانپذیری وجود داشته باشد که با حفظ معقول ارزش های, های مختلف منافع مشترک و متوسط تأمین شود. در همکاری در عین رقابت یک کنشگر به منزله طرفی از بازی به ارزش‌های دیگر طرف‌های بازی تولید ام از مخاطبان مراجع رقبا و ها توجه دارد نکته مهم توجه به مفهوم مکمل است یک کنشگر در همان حال که رقیب دیگری است در حوزه‌های خاص مرتبط با کنش طرف مقابل مکمل او نیز هست و بدون همکاری با او کار رقیب هم پیش نمی روید. در اینجا مفهوم همکاری در عین رقابت موضوعیت می آبد. بازی های و مفهوم شبکه از دیگر معضلات خلقیات اجتماعی ما این است که وقتی بخشی از مجموعه اجتماعی می خواهد بهبود نسبی پیدا کند بخش های دیگر با آن ناهمسازی می کنند و کار به انجام نمی خلقیات خوب، به مسابه بازی های اجتماعی تنها در مقیاس شبکه توسعه پیدا می کند. برای مثال، در دوره مشروطه شاهد رشد انجامن مردمی بودیم. این انجامن ها با قواعدی عمل کنند که نهادهای کلان سیاسی و حقوقی با آن بیگانه یا حتی مغایر بودند. بنابراین آن جنب و جوش افول می کرد و یا به سمت تنافر و تعارض می رفت. در همان دوره شاهد تغییر نظام سیاسی و تصویب قانون اساسی بودیم اما چون الگوهای متناسب با روح و روال قانون اساسی در رفتارهای خرد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ما هنوز درونی نشده بود، به اوراقی در دفتر و دیوان کاهش میافت و بازی قانونمندی در جامعه توسعه نمی‌یافت. در واقع گرفتار یک چرخه معیوب شده بودیم. از یک سو بازی های کوچک تقویت نمیشد و حتی به هم میخورد زیرا بازیها در مقیاس بزرگ اجتماعی وضع مطلوبی نداشت. برگ <>مثال بازی مشارکت در سطح محله و اجتماعات کوچک مدنی آغاز میشد، اما تقویت نمیشد. حتی تنبیه هم میشد چون ساختارهای کلان ما چندان با بازی مشارکت سازگار و همسو نبود و در آن سطح بیشتر قواعد زرنگی حصف و مانند آن جریان داشت از سوی دیگر گاه برعکس به طور موسمی هم که شده دوری از بازی بزرگ خوب اعلام شد و ترتیباتی برای آن فراهم می آمد. مثل مشروطه در این مورد نیز چون هنوز بازی های کوچک با قواعد و عادتباره نامطلوب قبلی جریان داشت بازی بزرگ و ترتیبات آن در حد اسم و رسم می مند. مفهوم تعادل کامل بازی های زیر مجموعه که سلتون آن را بسط داده است، این وضعیت را توضیح می‌دهد. تعادل که پیشتر از آن بحث شد، تنها وقتی در سطح کمال خود را نشان می‌دهد که بازی های زیر زیرمجموعه با بازی اصلی هماهنگ شود. بازی دموکراسی همان بازی بزرگ اصلی است که بدون بازیهای در مقیاس کوچک مناسب با آن، از آن جز نام و عنوان چیزی باقی نمی‌ماند. دموکراسی وقتی می تواند تعادل کامل ایجاد کند که انسان دموکراتیک، خانواده دموکراتیک، سازمانهای کار دموکراتیک، روابط آزاد، منشانه میان افراد و گروه‌ها و فرهنگ دیگرپذیری وجود داشته باشد. یکی از خصایص بازی‌های اجتماعی این است که رفتارهای خرد می توانند در رفتار کلان اختلال ایجاد کنند. این موضوع را شلینگ شرح داده است. گروهی میخواهند مطالعه کنند. هر نفر 100 واحد نور لازم دارد، ولی لامپ هر یک فقط شست واحد نور تولید می کند. اگر آنها دور هم بنشینند، هر یک شست واحد نور از لامپ خود و شست واحد دیگر از مجموع نور بغلستی چپ و راستی دریافت می کند. به این ترتیب تعادل تعاونی کارامدی شکل می گیرد. اما اگر یکی از آنها هرچند نبا قصد اخلاقی بد، لامپ خود را خاموش کند چون دو نفر سمت راست و چپ او نور کافی برای مطالعه ندارند، از مطالعه منصرف می شوند و لامپ خود را خاموش می و بازی از تعادل کارآمد خارج می شود و یا اساساً تعادلی به صورت خاموشی همه ی لامپ ها شکل می گویا راهی نیست جز اینکه که شبکه بازی سامان پیدا کند. به عبارت دیگر، هم بازی های بزرگ در مقیاس کلان جامعه باید بازیهای رقابتی در این همکاری و از نوع برنده برنده باشند و این به عمل اجتماعی برای اصلاحات نهادی نیاز دارد و هم بازیهای زیرمجموعه باید با بازیهای بزرگ هم سو و هم نوا باشد که این نیز محتاج کار امیق فرهنگی، فکری، آموزشی و تمرین اجتماعی است. در صورتی بازیگران راهبردهای خوب را انتخاب می‌کنند که تخطی از آن برایشان بهینه نباشد مفهوم تهدید معتبر و غیر معتبر که شلینگ آن را ارائه کرده است به فهم این امر کمک می‌کند باید شرایطی در جامعه ایجاد شود که حتی وقتی بخشی از بازیگران به قواعدی مقایر با شبکه بزرگ بازی وسوسه می‌شوند برایشان مطلوبیت مطلوبیت‌های کافی بهینه و اقلانی نباشد این همان تهدید غیر معتبر است مثال آن ساخت رقابتی در کشور و انتخابی شدن سمت است. اگر شهردار به خوبی برای مردم خدمت نکند در دوره دیگر حذف می شود مثال دیگر ایجاد فرصت های برابر برای افزایش شاخص مجموع سالهای تحصیل در جمعیت بالای پانزده سال کشور است در این صورت فرایند اجتماعی شدن افراد و درونی شدن ارزشها و هنجارها در آنها تسهیل می شود و رفتارهای اجتماعی ارتقا می